سر کوچه بالای حرم قبل از همه شیخ محمد نوکر خصوصی خداوندگار و خادم مدرسه را دیدم که با چهرهی مسترب ایستاده بود. تا ما را دید اول به سمت من دوید و بعد تغییر جهت داد و به سوی مادرم رفت و آهسته چیزی به او گفت. کاملا مطمئن بودم. در من خبر بدی دارد. من چندین و چند بار در این خانه این صحنهها را تجربه کرده بودم و خوب میدانستم آن نگاهها که رد و بدل می شود یعنی فاجعهی در شرف وقوع است یا اصلا واقع شده. مادرم چشمان وحشت زده را به سمتم برگردان رنگ از صورتش پریده بود. روشن بود که اتفاق بسیار بدی افتاده است. باید سر شمس بلایی آمده باشد. دیشب هم به خانه نیامد. خودش می گفت بعد از دعوایش با علایدین او را تهدید به مرگ کرده نکنند خدایا مرا ببخش. خدایا غلط کردم نکند دست علایالدین به خون او آلوده شده باشد خدایا به دادمان برس صبر نکردم کمکم کنند خودم به سرعت پیاده شدم و مثل تیری رها شده از چله کمان از دهلیز به سمت اتاقم دویدم در مدخل دهلیزی که به صفه میرفت از پشت سر صدای شیخ محمد را توی حیات شنیدم که با تزرع فریاد میزد. بیگم جان صبر کنید تنهایی آن سمت نروید حضرت شمس از سهرگاه که به خانه آمدهاند حرم و مدرسه را روی سرشان گذاشتهاند و مثل پلنگ تیر خورده می‌خُرند صبر کنید با یک نفر بزرگتر بروید. خاتون جان صبر کنید. صبر کنید حضرت آقا بیایند. وقتی معنی حرفش را فهمیدم هم خیالم از جانب او راحت شد و هم همزمان دانستم چه خشم هاری انتظارم را می کشد. خواستم برگردم تا ببینم چه بایدم کرد. که ناگهان دو چنگک آهنی توی تاریکی نمناک دهلیز بازوانم را از شانهایم کرد. پارچه خیس آستینم جر خورد و نفهمیدم چگونه از داخل دهلیز به درون اتاق پرتاب شدم. در حیرتم که چطور آن مرد پیر میتوانست با چنان نیرویی مرا مثل یک بچه گربه به این سو و آن سو پرتاب کند و چطور میتوانست چنان کلمات رکیکی را نسبت به همسر خود بر زبان آورد از چشمانش آتش میبارید گفته بودند که او را دیگر با من کاری نیست و از نو در جستجوی خداست. پس چه با کیش بود که با چند شبستانی خداوندگار از خانه بیرون رفته بودم؟ چرا مثل گرگی درنده از دور دهانش کف می جوشید و بی میزد و ناسزا می گفت؟ فکر می با حالی که او دارد با شدتی که ضربات را بر تنم وارد می کند تا هزار تکه نشوم آرام نخواهد گرفت. تصمیم گرفتم به هر جان کندنی که شده جانم را از چنگش برهانم تا به باخ برگردم. یاسها منتظرم بودند. فقط کافی بود که زنده میماندم و در فرصتی مناسب با خداوندگار صحبت می کردم زیر ضربات وحشیش خودم را به زحمت به صندوق رساندم و از آن بالا رفتم تا از راه پنجره حرم کمک بطلبم. یادم نمی آید که نه از آن پس را دیگر به یادم نمی آورم لابد همانها که مرا به تخت بسته بودند میدانستند که چه به سرم آمده است. همه دور رختخوا به من نشسته بودند و مرا نظاره می کردند و بعضا به سختی می گریستند. به تجربه میدانستم که آنها هم واقعا حواسشان به من نیست و احتمالا سینه های خودشان را سبک می کنند. هیچ وقت جز در لحظه های تنگ تر کردن قلو زنجیرهایم به من نیندیشیده بودند من ناخواسته به دنیا آمده بودم اجباراً رشد کرده بودم و شاید هم ناخواسته یا اجبارن از دنیا می رفتم. چقدر دلم میخواست غلط بزنم پشتم میسو هرگز نفهمیده بودم قلتیدن در رخت خواب چقدر لذت بخش است. یک قلت جانانه را به همسری امپراتور چین ترجیح میدادم. اما افسوس که همه اندامم را بسته بودند. نه، اگر هم نبسته بودند، از ترس آن درد جهنمی تکان خوردن نداشتم. باز حکیم آمده بود و داشت آهسته حرف میزد. بیان که حرفهایش را بشنوم از تک تک چهره ها خواندم که به زودی خواهم مرد. اگر میدانستم چقدر مرگ را دوست میدارم کمتر پنهانکاری می کردم. فقط دلم میخواست بدانم چه بر سرم آمده است. از پش, پش نامفهوم خسته شده بودم. یک نفر باید به من می چه اتفاقی افتاده است یا چه بلایی قرار است سرم بیاورند. دست چاقالو و خونک طبیب روی پیشانیم بود. تصمیم گرفتم چشمانم را باز نکنم تا شاید به تصور اینکه خواب هستم و نمیشنوم؟ با صدای بلند تر نسخه بپیچند تا شاید که بدانم این چه است که بر من می رود حقه عجیب کاری بود با صدای بلند به یک نفر گفت تب مرتب بالا می رود سه روز است که اینجا افتاده روده تخلیه نشده باید تنقیه کرد وگرنه با این تب اگر دچار تشنج شود، از دردگردن می میرد. فعلا فلوس و کرچک می دهم. اگر موثر نیفتاد، فردا به هر بدبختی باید تنقیه شود. البته دردگردن تا انتهای نخا می کشد و تنقیه بسیار دردناک است. اما خطرش از تشنج کمتر است. دری از این قنچه گل سرخ که این طوری پرپر پر شد هنوز جمله حکیم تمام نشده بود که هم نوازی گریه و فینفین و نوه فضای اتاق را انباشت به خداوندی خدا اگر درد اجازه میداد قهقه میزدم. عجب موجودات مصحکی هستیم ما انسانها آنها که دور رختخواب من میگریستند که بودند از آسمان نیامده بودند مگر همان کسانی نبودند که در طول آن سالها بود و نبود مرا به هیچ انگاشته بودند چه پیش آمده بود که به قول طبیب سه روز بود از بالای سرم جنب نخورده بودند و فینفین میکردند. مرا میشناختند میدانستند کیستم به چه میاندیشم و چه ها کشیدهام نیامده بودند تا لحظات مرگ را با همه ولع نوشداروی طبع مصیبت جوی خود کنند و چندی از لذت نظاره نفس بدبختی نوعی خوشبختی پر از ذلت را تجربه کنند برایم اصلا عجیب نبود. همیشه مرگومیر و مصیبت دیگران نشخار بندیها بوده است و مرهمی برای زخمهای روح مچال شده آنها. معلومم شد که سه روز است آنجا افتادم. با چشمان بسته بهتر توانسته بودم ناامیدی مواج در عمق صدای حکیم را درک کنم فقط هنوز نمیدانستم چه بر من رفته است و درد سوزانی که در گردنم متمرکز است از کجا به سراغم آمده است؟ باز بر زبانم زخم نشاندند و نیرا را کار گذاشتند و این بار به جای آن شربت شیرین و گرم و آرام بخش مایع ای شور و تلخ و چرب به جانم راه دادند که اندرونم را جااکند کرد. با وجودی که بستهشان بودم باز چند نفر دست و پا و سرم را در قفل چنگ خود داشتند. گیسهای باافتام مثل دمار سنگین خاکی رنگ روی سینههایم می میکردند. دیگر به آنها احتیاج نداشتم، می توانستند آنها را از بیخ ببرند، اما باید یکی را به علاعدین میدادند و یکی را به الیاس. با هر پیچشی که به دل و می آمد، در دی جانکاه بنیادم را می سوزان. از ریشه تک, تک موهایم تا نوک ناخن پایم میسوختند و تیر میکشیدند مینالیدم که خدایا ب دادم برست کجا و چرا مستحق به این عقوبتی بودم؟ شاید نفرین پرستوهاست. در همین حال و هواها کسی پارچههای خیص و سرد روی پیشانیم و با دستمالی نرم اشکهایم را پاک کرد و با لبهای داغ و مرتوب مثل لبهای مادرم پیشانیم را بوسید مادرم نبود تنش بوی عطر یاسهای بنفش را میداد مشام جانم نواخته شد کاش زودتر آمده بود تن تبدارم را در آغوش خنک و معطرش فشرد. وجودش اسیری بود. فکر می کردم اگر چشمانم را باز کنم او خواهد رفت. من هیچگاه فرشتهها را ندیده بودم. اما نمیدانم چرا مطمئن بودم که او فرشته است. فرشته ی یاسها ولی چرا آن همه دیر به سراغم آمده بود؟ گفتم باید لباسی از حریر ارقوانی و صورتی و بنفش در برداشته باشد. نباید او را رها کنم. حس کردم روی من خم شد و گیسهای بافدم را آرام از روی سینم برداشت. دکمه های پیراهنم را باز کرد. با دستهای اسیریش به نرمی و بیدرد پوستم را شکافت و تکه پاره قلبم را جمع کرد. سینام را از همهی دردها و اندوه عالم شست و جلا داد و بعد آن را بست و دگمه را انداخت و گردن از یاس بر گردنم آویخت درد از جانم رخت بربسته بود و آرامش به تدریج مثل جویبار زلالی درون تنم جریان داشت نمیدانم همه کس و همه چیز در اطرافم ساکت شده بودند یا من از میان رفته بودم با دستم به دنبال دامنش گشتم که به آن درآویزم تا دیگر مرا به آن زندگی پردرد باز نگرداند دستانم را در دستانش که مثل گلبرک های گل سرخ مخملی بودند گرفت پرسیدم تو فرشته یاس ها هستی؟ گفت نه من کیمیا هستم هاجرم مریمم رابعه چرا اوجی دایه آیا، زن، با تو زاده شدهام اما با تو نمیمیرم، تا گم را را نیابم نمیمیرم. سؤالی دارم و در جستجوی جواب میپویم و میجویم. بدرود ای جان خسته، آرام گیر در جاودانگی. دیگر چیزی نپرسیدم. میدانستم اینجا دیگر هیچ چیز در کلام نمی گنجد. خوشحال بودم که اگر من می میرم او به جستجو می رود. فشار دستانم را کم کردم تا برود. تا شاید روزی هر آنچه کشیدم معنا می گرفت. آرام مثل نسیم دستهای پرنیانیش را از دستانم بیرون لقزان. و بوی عطرش دوری گرفت معظنی بیخ گوشم ازانی انی کبریایی میخواند من اما هنوز بودم و آسمان هنوز سرمهای بود و ستارهای غریب و کوچک از روزن سقف به من چشمک میزد آدمها دیگر دورو برم نایستاده بودند اما صدای معلوف خور و پفشان میآمد نمیتوانستم سرم را بگردانم اصراری هم نداشتم احساس سرور و سبکی میکردم انگار اصلا تنی در کار نیست کاش فقط میتوانستم چشمانم را باز و ثابت نگاه دارم و با ستاره قریب روزنم نظر بازی کنم. اما انگار کسی آنها را با ملایمت می‌بست. صدای خشخشی از دور بر گوشم نشست. حتما کسی برای نماز بیدار شده بود. کاش من هم می توانستم نماز بخوانم. تمام ضرراتم میل به سجود داشتند. بهجتی عظیم وجودم را فرا گرفته بود. میدیدم که مثل مرغ دریایی روی موجی سبک می روم. ناگهان فکر کردم صدای زجه و جیغ کسی را میشنوم. هر هرچه گوش خواباندم صدا دورتر می شد. کم کم داشت همه ارتباطم با بیرون قطع می شد. در عوض حس می کردم گردا بی گرم و بی انتها زیر پایم می و مرا که مرغ دریایم در می آش آمد. بی اختیار می شرخیدم و میرفتم بدون حس، بدون فکر، بدون مقاومت، بدون درد، بدون ترس و بدون پایان. ناگهان صدای الیاسم را شنیدم که در گوشم دعا میخواند. کلمات مبهمی مثل مرگ و مردن شنیده میشد. می‌دانستم راجع به من است مشته‌ای بزرگی بود اگر هنوز کارهای نیمه تمام نداشتم باید نزد کسی اعتراف می‌کردم که با پرستوها چه کردم باید از دایجان طلب بخشش میکردم. باید الیاس را به خاطر چشاندن تعم اشقناب میبوسیدم. باید برای رابعه و فرشته ها یک سبد گیلاس برمیداشتم. باید می میکردم مرا به باغ ببرند و به خاک درختان یاس بسپارند. و همه چیزهایم را به اوجی بدهند و آب را ببندند تا فرشته استخر بتواند انگورش را بخورد باید می‌گفتم گوی بلورین علا را به جای تندیس عشق روی سنگ مزارم بگذارند او در این خیال و غرور باطل بود که عشق را فدای ایمان کرده است باید به او می‌گفتم. ایمانی که عشق را ممنوع کند، ایمانی که حق را خفه کند، خضوع به شیطان است. ایمان باید زاینده عشق باشد، باید موجب وصل شود، باید موجد شادی باشد، راه به آشنایی بگشاید، ریشه مصیبت و فراغ را بخشکاند. اوف بر مؤمنان قافل از عشق باید تره موهایم را از او پس میگرفتم باید از خداوندگار میپرسیدم او که همه زنهای زندگی خود را دوست می نداشته و خداوند مهر و چرا در جای جای سخنش زن را خود و مکار و مظهر فریب و اسباب همه انحرافات میخواند و او را ناقص عقلی مینامد که باید مواظبش بود شاید او به من پاسخ میداد که چگونه است که خیلی معلمان از جمله خود او آن همه مست از باده عشق بزن باز توانسته اند زن را آن همه تحقیر کند خود او چگونه می تواند مادر مرا آن همه عاشقانه دوست بدارد؟ می گفتند گوهر خاتونش را هم سخت دوست می داشته است. و حالا فاطمه خاتون و هدیه خاتون و ملک خاتون را هم بسیار دوست می دارد. پس چگونه است که زن را مظروفی از همه ضعفها ها تصویر می کند؟ نباید از یاد می بردم که به او بگویم: اگر میخواهد ملکه خاتون چغ نشود باید او را به باغ بفرستد، باید او را از حرم دور کند. باید به او بگویم اگر معلمینی چون او زن را همانطور طور مینگریستند که آفرینندهاش، آن وقت خیلی از مناسبات دنیا تفاوت می داشت. باید از او می‌پرسیدم به چه حقی مرا به شمس بخشید باید به آن عیار سر بازار لبخند هدیه میدادم باید مامی را میکشتم تا پیش دخترش به بهشت برود باید مادرم را میبخشیدم باید به شیخ صدرالدین میگفتم به خاطر بند تنبان خودش آن همه پیرایه بدین نبندد تا مادرش هم لعنتش نکند باید شاهنامه را با خودم برمی‌داشتم اما ظاهراً دیر شده بود نیروی مرموزی که مرا به اعماق می‌برد به تدریج همه بندهای پشت سرم را می‌برید باغ حرم مادرم اوجی همه متعلق به هزاران سال پیش بودند. با این همه به نظرم میآمد پردههای پرده های دارند از برابر چشمانم کنار میروند دیگر نمی سخن بگویم، نه ببینم و نه بشنوم با این همه سخت در عجب بودم که چگونه محیط پیرامونم وضوح بیشتری گرفته بود. خودم هم واقعی تر شدم. یادم آمد همانطور هم به دنیا آمده بودم. حالا دیگر مرکز جهان شده بودم و هیچ رنگی نبود که هجاب واقعیت اشیا شود. هیچ مفهومی نبود که خاطرم را بیازارد. هیچ جا نبود که به آن متعلق باشم و هیچ چیز نبود که به من متعلق باشد. کم کم بار هستی سبک و سبکتر می شد، با همان آهنگی که از بد به تولد رفته رفته سنگین تر شده بود. آشکارا می دیدم که مردن از زیستن با خوف آسان تر است. دیگر از هیچ کس و هیچ چیز نمی ترسیدم. حتی از شمس که آن پایین بر ساحل اقیانوس ایستاده بود و پوستینش را درآورده بود و کف دستانش گرفته بود و با نگرانی مرا میپایید تن داده بودم به گردا به اقیانوسی عظیم و آرام که بیرنگ بود و من سبک و لبریز از سرور در آن می میخوردم شمس جوان یا شاید علا پرشور با چهره مهربان و چشمانی پردرد به من مینگریست. امواج آرام مرا به بینهایت نهایت راندم. دستهای را به سوی شمایلش دراز کردم و فریاد زدم. عزیزم، کارهایت را تمام کن و بیا. منتظرت می مانم. تو را از روز ازل برای من و مرا برای تو آفریدند و با هزار خدعه و کرشمه به وصلمان رسانیدند من چه میدانستم؟ اما تو شاید میدانستی، تو باید میدانستی، تو عمری در کار کشف راسها بودی عمری کوه به کوه دیار به دیار مدرسه به مدرسه خانقاه به خانقاه کاویدی چرا اینطور شد چگونه شد که قافیه باختی چطور این همه قافل بودی اینک اما من ترا بخشیدم تو هم مرا ببخش هر هرچه شد نه گناه تو بود و نه گناه من گناه از پرده هاست و عظم پرده دار. ببین؟ ما را به اینجا کشانیده اند تا ببینیم. همینجا. سر اعظم همینجا در دل این اقیانوس بیرنگ و بیموج و عظیم و بسیط پنهان است. حقیقت در میان صدف بیرنگی و خلوص و سادگی است. هرچه از نوع دیگر گفتیم و شنیدیم همه رنگ بود و فری. و اما تو غلم در مست من، چه کم از این همه فهمیدی. اول کار خوب آمدی، چه شد که گرفتار خود شدی و عجبا که هنوز هم نمی دانی. هنوز هم عیب کارت را در دیگری می جویی و همیان خود فریبت را باز بر بردوش گرفدهی و ترک دیار می کنی. بر این سودا که اینک جوینده ای زیرکتری باز به ترک یار و دیار ابلیس توهم را در آغوش گرفته ای و میشتابی کجا؟ علا ادین شمس تبریزی نیشابوری بلخی قونوی آن دشمنی که میجویی جویی نه در دل زمان است نه در بطن مکان این دو موکلانی گمارده بر برخیشکاری عظیم و آشکار خیشند. هشدار، دشمن در همیان خود تو پنهان است. داستان بیشتر انسانها حدیث آن آهوی خطن نیست که رایه خود باز ندانست. حکایت راسوی بیچاره است که گند خود گم کرده بود. و به این و آنش نسبت میداد. تو هنوز نفهمیده ای که آن راه ها تنها به دیارانت میرسانند، نه به یارانت عمری رفته ای و باز میگویی که می روی. به کجا؟ بنگر که کجای کارت خراب بود که ما را بردند و تو هنوز بر جایی آه میدانم. که صدای مرا دیگر کسی نمیشنود اما تو واگویشان کن حقیقت به همین سادگی به همین زیبایی و به همین نزدیکی است دریقا که زمین دلمشغول این همه بازی است عوام در سودای خود عالم در سودای خود شیخ در صدای خود سوفی در صدای خود، موکل زمان و رنگ ها نیز سخت در کار خود. مبادا دیرمان شده باشد، تو بازشان گوی که کجا گرفتارند، وادارشان کن که فقط برای معرفت، برای دانستن، برای دیدن ورای رنگ ها دا کنند و نه هیچ چیز دیگر. زیرا که هرگز برابر نبودند نیستند و نخواهند بود آنان که می‌دانند با آنان که نمی‌دانند